عزیزان چه چیزی یک پارسای خود و گونه رو تعریف میکنه؟ آیا مربوط به لباسیه که می پوشیم؟ آیا چیزیه که می خوریم، یا نمیخوریم و نمی نوشیم؟ رفتار من با غریبه ها،, ها، یا دوستان نزدیک هم هست. به کلاس دیگری از دانشکدی کچکه کتاب مقدس خوش اومدین که در اون مععزی سرکور رو مطالعه می و من از شما دعوت میکنم که به دقت به معلممون گوش کنید که حقایق عمیق و عملی از حالیمه عیسای مسیح رو با شما درمیون میون میذاره. در این درس معلممون توضیح میده که ایسا تعلیم داده پارسایی خداگونه گاهی از اونچه که ما فکر میکنیم خدا از ما انتظار داره فراتر میره. حالا با هم به معلممون گوش میکنیم. ایسا در امتداد ساحل دریای جلیل خطاب به شاگردانش می گفته برای اینکه بتونند کاری در مورد این جمعیت پای کوه و انبوه مشکلات آنها بکنند باید به تعالیم او عمل کنن. برای همین منظور ایسا جلسه ای رو ترتیب داد که من به اون اولین گرده همایی مسیحیان در خلوت گفتم. او یکی که اونها رو دعوت کرد. بر اساس مرغوث سیزده ایسا شخصا تعدادی از شاگردانش رو دعوت کرد تا در بالای تپه مشرف بر دریای جلیل که ما به اون کوه میگیم به او ملحق بشه. بر بالای تپه او با شاگردانش صحبت میکنه. به نظر میرسه هدف از گرده همایی این بوده که بگه بذارید بهتون نشون بدم که چطور میتونید برای این جمعیت انبو راه حل و پاسخ بشید. تمام تعالیم موعظه سر کوه باید از این دیدگاه بررسی بشه. اولین چیزی که عیسی به این شاگردان تعلیم داد در مورد رفتارها بود و یادتون هست که اولین رفتار این بود خوشا حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است دومین رفتار این بود خوشا حال ماتم زدگان زیرا ایشان تسلی خواهند یافت و سومین رفتار که در جلسه قبل به اون نگاه کردیم این بود خوشا حال حلیمان زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد و حالا میرسیم به چهارمین خوشا به حال خوشا حال گرسنگان و تشنگان عدالت زیرا ایشان سیر خواهند شد وقتی به دو رفتار اول نگاه می کردیم دیدیم که خوشابهالها رو می تونیم دوتا دوتا بندی کنیم اونها به صورت جفت هستند حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند و در حالی که یاد می در روح فقیرند ماتم می گیرن. آخرین بار که به هلم نگاه کردیم حال حلیمان دیدیم که حلیم بودن آموختنی هست هلم واقعا چیزی بود که حلوس رسول در راه دمشق تجربه کرد. وقتی که مسیح زنده، مسیح قیام کرده از او پرسید ای شاول، شاول چرا بر من جفا می کنی؟ بر می خوا لگت زدن کار آسانی نیست؟ بعد شاول ترسوسی گفت خداوندا از من میخواهی چیکار چی کار کنم؟ اینجا بود که او یوغ رو پذیرفت. اینجا بود که او حلیم شد. حلیم شدن مربوط به اراده ما هست. چیزی که ما می شاید با چیزی که خدا میخواد تناقض داشته باشه. اما به این فکر کنید که هلم و گرسنگی و تشنگی برای ادالت چطور میتونن با هم جفت بشند؟ وقتی ما لگام رو پذیرفتیم و البته این کلمه استعاری هست. وقتی خداوند بر دهان ما لگام زد و بر پشت ما زین گذاشت و ما مایل بودیم که تحت کنترل او در بعد از اون چه رفتاری باید داشته باشیم و پولس رسول اون رو با این کلمات بیان کرده خداوندا از من می‌خواهی چیکار کنم وقتی که تحت کنترل خداوند هستیم وقتی که تحت کنترل روح هستیم و یا وقتی که میتونیم بگیم عیسی خداوند است و ما تسلیم کنترل او هستیم رفتار بعدی این هست که گرسنه و تشنه هستیم که بدونیم او از ما میخواد چیکار کنیم ما گرسنه و تشنه عدالت هستیم. عدالت راستی و یا زندگی در راستی هست. گرسنگی و تشنگی برای عدالت، گرسنگی و تشنگی برای اینه که بدونیم چه چیزی راست هست. مخصوصا بدونیم چه چیزی از نظر خداوند راست است. وعده ای که به همراه این خوش حال میاد اینه که اگر ما واقعا تشنه و گرستنه عدالت هستیم، از عدالت سیر خواهیم شد. کلمه یونانی به کار رفته برای سیری سیری به حد خفگی رو به کار برده لطفاً توجه کنید که ما از آیه 6 متا 5 صحبت می‌کنیم و توجه کنید که خوشا اینجا از این صحبت نمیکنه که خوشا حال کسانی که گرسنه و تشنه شادی هستند زیر آنها شاد خواهند شد خیلی ها هستند که احساس می‌کنند تعهد آنها برای مسیح باید برشون شادی بیاره اما این چیزی نیست که در این خوشابه حال اومده، بلکه میگه گرسنه و تشنه ی ادالت هستند. توجه کنید که خوشابه حال نمیگه خوشابه حال کسانی که گرسنه و تشنه ی کامیابی هستند. امروز خیلی میشنویم که مردم از کامیابی صحبت میکنند. اما این خوشابه حال واقعا این وعده رو به ما نمیده. من نمیگم که پیروان عیسی مسیح کامیاب نمیشن، ایمان دارم که میشن اما این انگیزه اونها برای پیروی از عیسی نیست و اونها گرسنه و تشنه کامیابی نیستن چیزهای زیادی هستند که میتونیم اینجا جای ادالت بذاریم خیلیا هستند هستن که امروز فکر میکنن باید این خوشابحال اینطور باشه خوشابحال تشنگان و گرسنگان ثروت زیر آنها ثروتمند خواهند شد این چیزی نیست که وعده داده شده خوشابحال میگه. خوشابهال گرسنگان و تشنگان ادالت زیرا آنها سیر خواهند شد. سیر از چی؟ سیر از ادالت. سیر از پری روح القدس که همون خداست و عادله. در نامه پولس به رومیان، پارسایی و ادالت موضوع باب اول هست. در اون رساله انگیز الهیاتی، در چهارباب اول پولس میگه خدا عادل هست. یعنی خدا راست هست. خدا تماماً کامل هست و بحث از رومیان یک تا چهار ادامه پیدا میکنه و میگه که خدا میخواد ما عادل باشیم. در واقع پولس میگه خدا از ما میخواد که عادل باشیم. پولوس همینطور در چهار باب اول رومیان میگه که خدا میدونه که ما حتی طی یک میلیون سال هم نمیتونستیم اونقدر عادل بشیم که ادالت الهی او رو راضی کنیم. بنابراین خبر خوش در کتاب رومیان به ما میگه که خدا چیکار کرده. خدا در شخص پسر شیسای مسیح به این جهان اومده و به جای ما عمل عادلانه انجام داده که بتونه مبنای نجات ما باشه او خدا انسان میشه و خودش رو به عنوان قربانی تقدیم میکنه تا اینکه ادالت الهی خدا به جا آورده بشه و بتونه راضی بشه و بعد بر مبنای مرگ او بر صلیب ما بتونیم در مقابل خدا پارسا شمرده بشیم چهارباب بعدی رومیان به ما میگه که چطور میتونیم به عنوان کسانی زندگی کنیم که عادل شمرده شدن. عملاً چطور میتونیم راست باشیم و کارهای درست انجام بدیم؟ این بحث چهارباب دوم این رساله مهم هست. خب کتاب مقدس به ما میگه که وقتی ما در قلبمون گرسنه و تشنه ادالت هستیم، برکت یافته هستیم. در قلمرو فیض هستیم و به لحاظ روحانی کامیاب هستیم. توجه کنید در این تعلیمی که به اون مععزه سر کوه میگیم موضوع پارسایی چقدر اهمیت داره. شما در آیه شش خوشابهالی دارید که میگه خوشابهال کسانی که گرسنه و تشنه ی نیکی مطلق هستند زیرا ایشان سیر خواهند شد. خوشابهال بعدی این هست. خوشابهال کسانی که در راه نیکی جفا میبینند زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان هست. دو تا از هشت حال مربوط به عدالت هستند. ما وقتی گرسنه و تشنه ادالت هستیم در ناحیه فیض قرار داریم برکت یافته هستیم و به لحاظ روحانی کامیاب شدیم وعده این هست که ما از اون سیراب خواهیم شد در بین این هشت خوشابهال همینطور به ما گفته شده که وقتی به خاطر ادالت جفا میبینیم چون گرسنه و تشنه ادالت هستیم ما برکت یافته هستیم به لحاظ روحانی کامیاب هستیم. و در ناحیه فیض قرار داریم تا اینکه از ادالت سیراب بشیم و در نتیجه این گرسنگی و تشنگی برای ادالت ما راستی رو پیدا می کنیم. ما به جایی می رسیم که با فیض خدا راست هستیم و بعد کارهای درست انجام میدیم به خاطر انجام کارهای درست تحت جفا قرار می گیریم. اما وقتی به خاطر اون جفا می بینیم برکت پیدا می کنیم دو تا از هشت خوشابهال مربوط به عدالت و پارسایی هستند. توجه کنید که در آیه بیست از به 5 چیز دیگری که عیسی در این تعلیم بزرگ اولین گرده همایی مسیحی هم میگه درباره عدالت ادالت هست زیرا به شما میگویم تا عدالت شما بر ادالت کاتبان و فریسیان افزون نشود به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد کاتبان و فریسیان تقریبا ادالت داشتند، اما عیسی دائمان با آنها درباره دیدگاهشان در مورد ادالت برخورد میکرد. عدالت آنها ادالتی ظاهری بود. در بیرون آنها میخواستند که عادل جلو کنند. آنها شیپور کوچکی از توی ابایشان در خیابانی شلوغ در میآوردند و در این شیپور کوچک میدمیدند و وقتی مردم جمع شدند تا ببینند این صدای چی هست، آنها در مقابل چشم مردم ای در کاسه یک گدا انداخته. عیسی گفت اونها این کار رو میکنند تا توسط مردم دیده بشن اونها میخواستن مردم فکر کنن که اونها عادلن و به این دلیل اون کارو میکردند عیسی میگفت اونها وسط روز در سر چهارراهها ها دعا میکردند چون که میخواستن در نظر مردم عادل و مقدس جلوه کنن عدالت اونها ظاهری بود عیسی به شاگردانش گفت ادالت شما نباید ظاهری باشد بلکه باید درونی باشد انسان درونی بسیار مهمتر از انسان بیرونی هست. بسیار مهم هست که ادالت شما درونی باشد نه بیرونی. ادالت کاتبان و فریسیان افقی بود. اونها باید توسط انسانها دیده می شدن. هدف اونها دیده شدن توسط انسانها بود. اون ادالتی برای جلب نظر خدا نبود. وقتی اونها دعا می در واقع با خدا صحبت نمی کردن. بلکه با مردمی صحبت می که در سر چهار یا کنیسه ها عیسی ایسا تحکید می کرد که ادالت شما باید عمودی باشد نه افقی داخل پستوی خودتون برید و اونجا دعا کنید جایی که غیر از شما و خدا پدر آسمانی شما کسی نباشه چون اوست که در خلوت شما هست و شما رو پاداش خواهد داد نزد پدر خودتون دعا کنید او داشت می گفت که عدالت و پارسایی شما باید عمودی باشه نه افقی ادالت کاتبین و فریسی ها چیزی بود که شما میتونید بهش بگید شرعی اون شریعتی بود ایسا همیشه میخواست که وارد روح شریعت بشیم نه شریعت مکتوب او عمدن یک بار قانون سبت را شکست تا این نکتر رو روشن کنه وقتی او کسی رو در روز ثبت شفا میداد و اونها اعتراض میکردن به اونها میگفت سبت به جهت انسان مقرر شده نه انسان برای سبت روح قانون سبت برای رفاه انسان بود وقتی شما در روز سبت کاری برای رفاه انسان میکنید اون در هماهنگی با روح قانون سبت هست. اما اونها اونقدر شریعتی بودند که این دیدگاه را از دست داده بودند پولس رسول بعدها به این به عنوان روح شریعت و شریعت مکتوب اشاره کرد پولوس گفته که او ما را هم کفایت داد تا عهد جدید را خادم شویم، نه حرف را بلکه روح را زیرا که حرف میکشد کشد لکن روح زنده می کند. ادالت کاتبین و فریسیان شریعتی بود و ایسا گفت ادالت شما باید روحانی باشد. ادالت آنها موقتی بود و ایسا گفت ادالت شما باید ابدی باشد. بود ابدی مهمتر از این بود موقت هست. و بعد به طور گسترده ای عدالت اونها سنتی بود اون بر مبنای قوانین و سنت های ساخته خود اونها بود که به کتاب مقدس اضافه کرده بودند و حتی گاهی کتاب مقدسی هم نبودن البته عیسی می گفت عدالت شما باید کتاب مقدسی باشه در اناجیل متا و مرقس عیسی با رهبران مذهبی در این مورد رو در رو مخالفت میکرد او به اونها یادآوری میکرد که گاهی سنت های اونها که او به اونها سنت های اجدادی می گفت برخلاف کتاب مقدس بود. و وقتی اونها به سنت ها بیشتر از کتاب مقدس اعتبار قائل می شدن، ایسا اونها رو به این دلیل توبیخ می کرد. پس عدالت کاتبین و فریسیان سنتی بود و عیسی تعلیم می داد که ادالت واقعی باید کتاب مقدسی باشه. عیسی تعلیم می داد که ادالت پیروان او باید استثنایی باشه. او گفت تا عدالت شما بر ادالت کاتبان و فریسیان افزون نشود به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد عیسی گفت ادالت شما باید بسیار رابطه ای باشه به این دلیل خوشابهالها در اینجا در بالای کوه تعلیم هستند و بقیه اونها کاربورت هستند. وقتی او شروع کرد به دادن کاربورت ها با اشاره به این شروع کرد که این عدالت چطور در سطح رابطه ای کار میکنه تفاوت واقعی بین پارسایی کاتبین و فریسیان با پارسایی که عیسی تعلیم میداد این بود. عیسی می گفت که پارسای اونها ریاکارانه هست. کلمه ریاکار در زبان یونانی یعنی صورت دروغی. در ایام قدیم در تیاترها از ماسک ها یا صورتک های استفاده می‌کردند تا شخصیتی را که می‌خواستند ارائه کنند نشان بدن. کلمه ریاکاری به معنی وانمود کردن است. زدن صورتک به چهره و تفاوت ظاهر و باطن هست. یک ریاکار کسی نیست که کارهای روحانی رو اونطور که دلش میخواد انجام بده. یک ریاکار کسی هست که سعی نمیکنه واقعا روحانی باشه. او وانمود میکنه که روحانی هست. شاید حتی به انجیل باور نداره یا شاید به اون چیزی که مردم با ایمان باور دارن باور نداره. به طور مسلحتی به هر دلیلی که بشه فکر کرد و نموت میکنه که ایمان داره و عیسی گفته ای ریاکاران ادالت کاتبین و فریسیان ریاکارانه بود عیسی تعلیم میداد که ادالت پیروان او باید حقیقی باشه باید اونها حقیقی باشن شما مراجع زیادی برای این مفهوم ادالت در تعالیم عیسی میبینید مخصوصا اینجا در موعظه سرکو کوه خوشا که ما باید گرسنه و تشنه ادالت باشیم و خوشا که میگه آزاری که ما به خاطر ادالت میبینیم باعث برکت ما هست و این تعلیم که ادالت شما باید از ادالت کاتبین و فریسیان بیشتر باشد همه اینها در متا پنج هستند و بعد به عنوان بخشی از سر سرکو در باب شش عیسی گفته مواظب باشید که کارهای نیک خود را برای جلب توجه مردم در انظار دیگران انجام ندهید زیرا اگر چنین کنید هیچ عجری نزد پدر آسمانی خود ندارید. پس وقتی او در این باره با ما حرف میزنه و در باب شش به بالا اشاره میکنه در واقع در مورد ادالت با ما صحبت میکنه. اطمینان حاصل کنید که هر کاری انجام میدید اما از پرستش، مباشرت، دعا و روزه همه در مقابل خدا باشه نه در مقابل مردم. به خاطر خدا باشه، نه به خاطر مردم. در نیمه دوم متاشش او درباره ارزش ها صحبت میکنه. به بالا نگاه کنید و ارزش های خدا رو دریافت کنید. اولویت‌های خدا قلب اون تعالیم آیه 33 3 هست جایی که میگه شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید. آن وقت همه این چیزها نیز به شما داده خواهد شد. به لحاظ اوولیت من معتقدم همه ما باید اولویت‌های مانند صفحه هدف که احتمالاً از ده دایره تشکیل شده داشته باشید مانند صفحه هدفی که به سوی اون تیراندازی می وقتی به اولویتاتون فکر می اولین دایره مرکزی صفحه هدفتون چی باید باشه؟ بنابرای گفته ایسا بنابرای گفته ایسا در متا شش اون باید دو چیز باشه اول باید پادشاهی خدا باشه یعنی خدا باید پادشاه شما باشه دوم باید ادالت او باشه من معتقدم شما میتونستید اون رو تفسیر کنید که اون چیزی که او به شما نشون میده چیه این باید دایره مرکزی صفحه هدف اولویت های شما باشه حالا همه اونها به ما کمک میکنند حداقل از نظر تعالیم عیسی اهمیت مفهوم ادالت رو درک کنید من فکر میکنم شما در سرتاسر سر کتاب مقدس خواهید فهمید که ادالت از نظر خدا موضوع مهمی هست. در مزمور چهار آیه پنج یکی از آیات مورد علاقه من هست که میگه قربانی های ادالت را بگذرانید و بر خداوند توکل نمایید در مزمور چهار مزمور نویس نمیتونه بخوابه چون باید تصمیمی بگیره او سعی میکنه تصمیم بگیره که آیا کار درست را انجام بده یا چیزی را که مسلحت هست خود ما گاهی در زندگی سر این دوراهی قرار میگیریم اگر کار مسلحتی رو انجام بدیم، میتونیم ببینیم چطور میتونیم به روش خودمون انجام بدیم و اون خیلی به ما صدمه نخواهد زد اما انجام دادن کار درست برای ما چنان بهای سنگینی خواهد داشت که حتی نمیدونیم چطور باید از اختش بر بیاری. بنابراین گرچه مزمور نوی صداقت داره به این دلیله که با خودش در کشمکش هست او وسوسه شده که راه آسون رو انتخاب کنه و به جای کار درست کار مسلحتی رو انجام بده اما در نیمه های شب نمیتونه بخوابه تا اینکه این مسئله را حل میکنه. او میگه تصمیم گرفته قربانی های عدالت رو بگذرونه و بر خداوند توکل کنه. معنیش اینه که او میخواد به هر قیمتی که براش تموم میشه کار درست را انجام بده. هر قربانی که باید تقدیم کنه تا کار درست را انجام بده تقدیم خواهد کرد و بعد از اون بر خداوند توکل خواهد کرد. بعد از اون او میگه به سلامتی میخواستم و به خواب هم میروم زیرا که تو ای خداوند مرا در اطمینان ساکن میسازی این آیه زیبایی در مورد ادالت هست. دلیلی که مردم پای تپه اون همه مشکلات داشتن، این هست که رفتارهای درست نداشتند اونها سعی میکردند کارهایی رو که مسلحت هست انجام بدن همه اونها سعی میکردند کارهای مصلحتی انجام بدن و هیچ کس کار درست انجام نمیداد وقتی شما به جای کار درست کار مصلحتی انجام میدید سرانجام اون پیچیده خواهد بود همه چیز از تمرکز شما خارج میشه این بخشی از چیزی بود که اون جماعت پای تپه باید میدیدند اونها باید کسی رو میدیدند که مشتاق از کار درست را انجام بده در مزمور چهار دلیلی که مزمور نویس میگه همه ما باید قربانی عدالت تقدیم کنیم و به خداوند توکل کنیم اینه که خیلی ها به ما نگاه میکنند که از خودشون میپرسن چه کسی چیز خوبی به ما نشان خواهد داد هر روز در تمام طول روز اطراف ما رو کسانی فرا گرفتند که دنبال کسی میگردند که واقعی باشه اونا وقتی ببینن کسی کار درست انجام میده حتی اگر باید بهای سنگینی برای اون پرداخت کنه بسیار تحت تأثیر قرار میگیرن این بر مردم تأثیر خواهد گذاشت این یکی از دلایلی هست که عیسی گفت اگر می نمک زمین و نور جهان بشید اگر می شهری باشید که بر بالای تپه بنا شده و نمیشه اون رو مخفی کرد اگر می خواهید چراغی در چراغ پایه باشید و به دیگران نور بدهید اگر می راه حل من و جواب من برای مشکلات این جمعیت انبوه در پای کوه باشید باید گرسنه و تشنه ادالت باشید باید گرسنه و تشنه درستی باشید تا اینکه خدا شما رو سیراب کنه تا اینکه به جای کار مسلحتی کار درست رو انجام بدید تا اینکه پارسایی داشته باشید که بسیار فراتر از پارسایی کاتبان و فریسیان هست که بی‌نهایت ریاکارند پارساییشون ظاهریه سنتی و شریعتیه و واقعا کتاب مقدسی نیست و واقعا از طرف خدا نیست عدالتی که افقی هست ظاهری است و برای کسب تمجید مردم هست اگر پارسایی شما فراتر از اون نو باشه شما شاگردان و او خواهید بود شما باید بخواهید در زمره کسانی باشید که گرسنه و تشنه ادالت هستند، تا اینکه از ادالت سیراب بشید میبینید که چرا عیسی گفت یک راه فراخ هست و یک راه باریک راه فراخ هرگز منتهی به راه حل و جواب نمیشه بلکه برعکس منتهی به حلاکت میشه و بسیاری از مردم در اون را حرکت میکنه. اگر بخواهید شاگرد او بشید، خواهید فهمید که از دروازهی بسیار تنگ شروع میشه و در راهی بسیار باریک، سخت و منضبط امتداد پیدا میکنه. ببینید، راه آسونی برای این نیست که بتونید بخشی از راه حل و بخشی از پاسخ عیسی بشید. شاگردی عیسی مسیح راه آسونی نداره. ما با بکار گرفتن خوشابهال چهار روم باید این رو درک کنیم. خوشابهال گرسنگان و تشنگان ادالت زیرا ایشان سیر خواهند شد. این نباید باعث تعجب ما بشه چون که کتاب مقدس پر از ارجاعاتی در مورد ادالت است اگر شما یک کشول آیات داشته باشید و کلمه ادالت یا عادل رو در کتاب مقدس جستجو کنید اهمیت مفهوم ادالت رو در سرتاسر کتاب مقدس خواهید دید من از بین آیات متعدد دوست دارم اینجا به آیه اشاره کنم از اشعایه سه که میگه قوم خدا باید اینطور خوانده شوند درختان ادالت و مغروس خداوند به جهت تمجید وی نامیده شوند ما چطور خدا رو جلال میدیم؟ چطور ما بخشی از جواب و راه حل عیسی میشیم؟ لازمه اش حلیم بودن هست این جایی هست که ما به خدا میگیم خدایا، این چیزی نیست که من بخوام، بلکه چیزی که تو میخوای. ما تسلیم کنترل او میشیم و بعد گرسته و تشنه میشیم تا آنچه را که درسته انجام بدیم و آنچه که درسته بشیم. میتونیم وعده او رو بطلبیم که وقتی گرسته و تشنه ادالت هستیم، او ما رو از ادالت سیراب کنه. عزیزان در سرتا تا سر معیزه سر کوه به ما تعلیم میده که معنی پیرو واقعی عیسی بودن چیه و چگونه میشه یکی از شاگردان حقیقی اون شد. ما در دانشکتی کوچک کتاب مقدس بسیار خوشحالیم که شما تصمیم گرفتین در این دوره با ما همراه باشین و دعا میکنیم که خدا امروز شما رو ملاقات کرده باشه و شما را از عدالت سیر کرده باشه چون شما گروسنه و تشنه ادالت اون بودید. حالا تا برنامه بعدی دعای ما اینه که شما از شادی و آرامشون پر بشین و تشویق بشین، شاگردی برای عیسی بشین که او شما رو برای اون خونده و دعای ما اینه که بیش از پیش به اون متعهد باشین و در دسترس او باشید تا خدا بتونه از شما استفاده کنه و هر روزه در رابطه خود با خدا رشد کنین.